از گروه قرآن و آموزش رادیو قرآن هر زمان بخان ای جان همد حضرت صبحان هر زمان بخان ای جان همد حضرت صبحان از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن مصحف خدا بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان و عرض سلام و عدب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند در شبی دیگر با شما همراهیم با برنامه از مجموعه با ستارگان. امیدواریم که با برنامه امشب نیز ما را همراهی بفرمایید <تصفيق> شیخ محمود عبدالحکم در نخستین روز از ماه فوریه سال 1915 میلادی برابر با روز دوشنبه 11 بهمن ماه سال 1293 شمسی در روستای کرنک واقع در استان قنا از سعید مصر در میان خانواده متدین به دنیا آمد پدرش شیخ احمد عبدالحکم یکی از آلمان مشهور روستا و شخصیتی محبوب در میان مردم بود و جایگاه دینی و ادبی بارزی داشت. بر این اساس فرزندش محمود را در سنین کودکی به مکتب خانه فرستاد تا به یادگیری قرآن کریم بپردازد. بدین ترتیب این نوجوان با استعداد موفق شد در ده سالگی حفظ قرآن را به پایان ببرد، و در اصول قراءات نیز به تسلط دست یابد. از آنجا که وی با اعتماد به نفس در میان اعضای خانواده به قرائت آیات وحی میپرداخت و شیرینی صدا و زبردستی در قرائتش را برای آنها به نمایش میگذاشت پدرش تصمیم گرفت تا او را به تحصیل بیشتر در زمینه علوم قرآنی تشویق کند. بنابراین، وی را راهی معهد احمدی در تنتا کرد. شیخ محمود پس از آنکه دو سال در این مرکز به تحصیل پرداخت سپار ال ازهر شد تا دانسته های قرآنی و دینی خود را در آنجا تکمیل کند. حضور دو ساله او در این مرکز علمی جهانی تنها صرف علمموزی نشد. بلکه در خلال ایام تحصیل قرائت قرآن کریم در محافل و مجالس قاهره را نیز آغاز کرد این امر سبب شد تا رفته رفته مرد توجه دوستداران فن تلاوت قرار گیرد و با انتشار شهرتش در جای جای قاهره و استانهای همجوار دعوتها برای قرائت کتاب خدا در مجالس از هر کجا به سوی او سرازیر شود اگرمان که وی پس از چندی به عنوان یک قاری برجسته جایگاه والایی در میان مردم پیدا کرد هرگز در مسیر کسب ثروت از تلاوت قرآن قدم بر نداشت چنانکه هیچ شرطی را در مورد اجرت قرائت در محافل به پیش نمی کشید و حتی گاهی مبالغی را حدیه به رسم هدیه به خدمتگزاران محافل ترهیم از فراش گرفته تا قهوچی تقدیم می کرد. همچنین آنگونه که گفتن همان اجرتی را نیست که بابت تلاوت قرآن دریافت می کرد بدون آنکه که برای کس به تلا از کمیتش بررسی کند در جیب می نهاد و ای در ابتدا به تقلید از روش لحنی قاریان بزرگ مصر می پرداخت و در این امر از چنان تسلطی بهرمند بود که شگفتی همگان را بر می اما پس از چندی ضمن افزودن ابداعات ادای دیگر بر سبک قاریان مشهور موفق به پایریزی اسلوب ویژه‌ای برای خود شد و نام خیش را در فهرست قاریان صاحب سبک در نیمه اول قرن بیستم میلادی ثبت کرد <تصفيق> ولو محمود و چشمگیری در زمینه همکاری با تشکلهای قرآنی و خدمات مربوط به فن تلاوت و امور روزمره قاریان داشت. وی در این زمینه با قانون قاریان که با محوریت مشاهیری همچون شیخ علی محمود، شیخ محمد رفعت، شیخ عبدالفتا شعشائی و شیخ محمد سیفی در مسجد امام حسین علیه السلام تشکیل شده بود، همکاری تنگا تنگی داشت. و به عنوان دبیر صندوق این اداره به عدای وظیفه پرداخت. او در خلال این مدت رهنمودها و ارشادهای فنی و تخصصی فراوانی را نیز از قاریان بزرگ نظیر شیخ محمد رفعت دریافت میکرد و در سایهٔ همین راهنماییها در سال 1944 میلادی برابر با سال 1323 شمسی در برابر هیئت مهارت سنجی رادیو مصر قرار گرفت و پس از کسب موفقیت در تمامی آزمونها و امتحانات این گروه به عنوان قاری در این رسانه پذیرفته شد. و پس از این دروازه‌های افزونتری از موفقیت یکی پس از دیگری پیش روی او کشوده شد چنانکه دیگر رادیوهای عربی و شرقی در کشورهای اسلامی از او دعوت کردند تا در برابر میکروفون قرار گیرد و به قرائت آیات نورانی وحی برای جهانیان بپردازد صدای زیبا، ادای قرآنی استادانه و معنامحوری در آثار او علاقمندان فراوانی را در سرتاسر سر کشورهای جهان به سوی او متمایل کرد و وی را به قاری محبوب قشرهای مختلفی از مردم و متخصصان بدل کرد. اگرچه تمامی آثار قرآنی او از سطح فنی و معنوی فائقی بهرهمندند اما به زعم صاحب نظران تعدادی از این آثار به عنوان شاهکارهای غیرقابل قابل تکراری در دنیای تلاوت جاودانه و ماندگار شدند این قاری برجسته در سایه تسلط ادایی وافرش عهدهدار قرائت قرآن در مساجد معروفی شد وی پس از آنکه به مدت چندین سال در مسجد اشراف به تلاوت کتاب وحی پرداخت برای عدا رسالت قرآنی و تلاوت سوره کهف در روزهای جمعه به مسجد سید نفیسه قاهره که یکی از مهمترین اماکن دینی منصوب به اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم است نقل مکان کرد همچنین بوزویت اداره مقار المصریه درآمد این اداره فعالیت‌های مهمی در جهت تبدیل مساجد مصر به اماکن حفظ قرآن کریم انجام می‌داد اعضای تشکیل دهنده آن نیز شخصیت‌های برجسته ای مانند برخی از وزیران دولت ادده ای از مسئولان و استادان دانشگاهی و برخی از قاریان نظیر شیخ محمود البنا شیخ علی حجاج السویسی و شیخ محمد محمود تبلاوی و همچنین ناظر قرآنی وزارت اوقاف و مدیر کل رادیو قرآن مصر بودند. محمود عبدالحکم در کنار این فعالیت ها و خدمات سفرهای خارجی مختلفی نیز به کشورهای خارجی داشت و در خلال این مسافرت ها نوای آسمانی قرآن کریم را به گوش مسلمانان رساند یکی از این مسافرت ها عزیمت به مالزی بود شیخ در آنجا آثار ارزشمندی از قرائات های گذار و زیبا را به علاقمندان فن تلاوت عرضه کرد علاوه بر این به عربستان سعودی امارات متحده عربی بهرین، کویت قطر امان سومالی، سودان، مراکش، هند، سنگاپور و کره جنوبی سفر کرد تا در محافل و مجالس دینی مختلف به تلاوت قرآن بپردازد. وی در طول عمر پربرکت خیش موفق به ضبط دوره کاملی از ترتیل قرآن کریم نیز شد. این دوره در سال 1980 میلادی برابر با سال 1359 شمسی در کشور کوویت ضبط شد او همچنین آثار قرآنی چندی را در رادیهای پاکستان هند، اندونزی، کره، قطر ترکیه، مراکش و عربستان سعودی ضبط کرد <تصفيق> یکی از وقایعی که شیخ محمود عبدالحکم در مسافرت‌های خارجی خود با آن مواجه شد حادثه‌ای بود که در سال 1965 میلادی برابر با سال 1344 شمسی برایش رخ داد وی در این سال به دعوت وزارت اوقاف الجزایر به آن کشور سفر کرد هنگامی که برای تلاوت در مراسم افتتاح یکی از مساجد مهم آزمانجا بود اتومبیل حامل وی و همراهانش که جمعی از مسئولان عالی رتبه وزارت اوقاف الجزایر بودند در اثر حادثهای ای واژگون شد شیخ محمود در این سانحه دچار مجروحیت شد و پس از انتقال به بیمارستان در مدتی بالغ بر یک ماه به استراحت و درمان جراحات وارده پرداخت. او پس از بازگشت به قاهره در نهایت شگفتی دریافت که تمامی همراهانش جان خود را در این حادثه از دست دادند. این خبر که پس از کسب سلامت به او رسیده بود وی را شدیدا متعصر کرد و تحت تأثیر قرار داد. چنانکه همواره به پاس نجاتش از این سانهه سجده شکر به جا می آورد. این قاری بزرگ به رقم شهرت جهانیش بسیار متواضع و زود پیشه بود. بر همین اساس ترجیح میداد تا از انظار عمومی به ویژه خبرنگاران جراگد دور باشد. یکی از نویسندگان در تمجید از شیخ گفته است وقتی وی را برای تلاوت در مجلس ترحیم یکی از عدیبان مشهور مصر دعوت کردم سریعا دعوتم را اجابت کرد او پس از پایان مراسم هیچ اجرتی را برای تلاوت در آن محفل دریافت نکرد و گفت این عدیب بزرگ خدمات مهمی به ما ارزانی داشت و من اکنون با تلاوت قرآن در مراسم ترهیم او بخشی از دین خود را به او عدا کردم Of oh. course. تن تنن terram luar نویسنده دیگری در مورد شیخ محمود عبدالحکم میگوید او نماد بارز و مثال روشنی برای اهل قرآن و حاملان کتاب خداست که در خلال مدتی بیش از سه دهه یعنی از سال 1945 میلادی تا سال 1982 میلادی توانست اثر واضحی در میان قاریان بزرگ بر جایی گذارد این دیدگاهان نشان میدهند که وی به راستی